مصنوی معنوی مولوی برنامه 139 م دست شاه به کشتن امرا و شفاعت کردن عیاز پیش تخت سلطان که الافو اولا پس عیاز مهر افزا برجهید پیش تخت آن الاغ سلطان دبید سجده کرد و گلوی خود گرفت که قبادی که از تو چرخارد شگفت. ای همایی که همایان فرخی از تو دارند و سخاوت هر سخی. ای کریمی که کرمهای جهان ماه گردد پیش ایسارت نهان. ای لطیفی که گل سرخت بدید از خجالت پیرهن را بردارید از غفوری تو غفران چشم سیر روبهان بر شیر از افو تو چیر جز که افو تو کرا دارد سند هر که با امر تو باکی کند غفلت و گستاخی این مجرمان از وفور افو توست ای افولان دائمان غفلت ز گستاخید امد که برد تعظیم از دیده رمد غفلت و نسیان بد آموخته ذاتش تعظیم گردد سوخته حیبتش بیداری و فتنت دهد سه و نسیان از دلش بیرون جهد وقت غارت خواب ناید خلق را تا به کسی زو دلق را خواب چون در می رمد از بیم دلق خواب نسیان کی بود با بیم حلق لا تو آخذ نسینا شد گواه که بود نسیان به وجه هم گناه. زان که استکمال تعظیم او نکرد، ورنه نسیان در نیاوردی نبرد. گرچه نسیان لابد و ناچار بود، در سبب ورزیدن او مختار بود. که تهاون کرد در تعظیم ها تا که نسیان زاد یا صحو و خطا همچون مستی کو جنایت ها کند گوید و معذور بودم من زخطت گویدش لیکن سبب عیزشت کار از تو بود در رفتن آن اختیار بیخودی نامد به توش خاندی، اختیارت خود نشد، توش راندی. گر رسیدی مستی به جهد تو، حفظ کردی ساقی جان اهد تو. پشت دارد بودی او و من غلام ذلت مست اله. افوهای جمله عالم ذرۀیی عکس افود ای تو هر بهرۀیی افوها گفته ثنای افو تو نیست کف وش ای یوحنا ستقو جانشان بخشو ز خودشان هم مران کام شیدین تو اند ای کامران رام کن بروی که روی تو بدید فرقت تلخ تو چون خواهد کشید از فراق و حجر میگویی سخون هرچه خواهی کن ولیکن این مکن صد هزاران مرگ تلخ شست تو نیست مانند فراق روی تو تلخی حجر از زکور و از اناس دوردار ای مجرمان را مستقاس. بر امید وصل تو مردن خوش است. تلخی حجر تو فوق آتش است. گبر میگوید میان آن سقر. چه غمم بودی گرم کردی نظر. کان نظر شیرین کننده رنج هاست. ساهران را خونبه های دست و پاست تفسیر گفتن ساهران فرعون را در وقت سیاست که لا زیر انا الا ربنا منقلبون نعره لازر بشنید آسمان چرخ گوی شد پی آن سولا جان ضربت فرعون ما را نیست زیر لطف حق غالب بود بر قهر غیر گر بدانی سر ما را ای مزل میرهانی من زرنج ای کور دل هین بیازین سو بیبین کین ارغنون میزند یالیت قوم یالمون داد ما را فضل حق فرعونیه نه چو فرعونی ملکت فانیه سربرا ملک بین زنده و جلیل، ای شده غر را با مصر و رود نیل. گرتو تو ترک این نجس خرقه کنی، نیل را در نیل جان غرقه کنی. هین بدار از مصر ای فران دست. در میان مصر جان صد مصر هست. تو انا همی گوی با همی به آم غافل از ماهیت این هر دو نام رب بر مربوب کی لرزان بود کی انادان بند جسم و جان بود نک انا ماییم رسته از انا از انای پربلای پرعنا، آن انایی بر تو ایسگ شوم بود، در حق ما دولت محتوم بود. گر نبودید این انایی کی نکش، کی زدی بر ما چونین اقبال خش، شکر آنکه از دار فانی می رهیم بر سر این دار پندت می دهیم دار قتل ما براق رهلت است دار ملک تو غرور و غفلت است این حیات خفیه در نقش ممات وان ممات خفیه در قشر حیات می نماید نور نار و نار نور ورنه دنیا کی بوده غرور هین مکن تعجیل اول نیست شو چون غروب آری برا از شرق زو از انایی ازل دل دنگ شد این انایی سرد گشت و ننگ شد زان انای بی انا جان شد جهان او از انایی جهان از انا چون رست اکنون شد انا آفرینها بر انای بی انا کو گریزان و انایی در پیش میدود چون دید وی را بی ویش طالب اویی نگردد طالبت چون بمردی طالبت شد مطلبت زندگی که مردشو شوید ترا طالبی کی مطلبت جوید ترا اندر این بحث ارخرد رهبین بوده فخر رازی رازدان دین بوده لیک چون من لم یزق لم بود عقل و تخیلات او حیرت فزود کی شود کشف از تفکر این انا آن انا مکشوف شد بعد از فنا میفتد این عقل ها در افتقاد، در مقاکی حلول و اتحاد ای ایاز گشتفانی زقتراب، همچو اختر در شعاع آفتاب بلکه چون نطفه مبدل تو بطن، نس حلول و اتحاد مفتتن عاف کن، ای آف در صندوق تو، سابق لطفی، همه مسبوق تو، من که باشم که بگویم عاف کن، ای تو سلطان و خلاصه امر کن، من که باشم که بوام من با منت، ای گرفته جمله منها ها دامنت مجرم دانستن عیاز خود را در این شفاعتگری و عذر این جرم خواستن و در آن عذرگویی خود را مجرم دانستن و این شکستگی از شناخت عظمت شاه خیزد که انا اعلمکم بالله و اخشاکم لله و قال الله تعالی انما يخشى الله من عباده العلماء من کیارم رام خلمالود را، ره نمایم حلم علمندود را، صد هزاران صفع را ارزانیم، گر زبون صفع ها گردانیم. من چه گویم اعلامت کنم، یا که یادت دهم شرط کرم؟ آن چه معلوم تو نبود چیست آن و آنچه یادت نیست کو اندر جهان. ای تو پاک از جهل و علمت پاک از آن که فراموشی کند بروی نهان. هیچ کس را تو کسی انگاشتی همچو خورشیدش بنور نور افراشتی. چون کسم کردی اگر لابه کنم مستمع شو لابه ام را از کرم. زان که از نقشم چو بیرون برده آن شفاعت هم تو خود را کرده ای. چون زرخت من تو هی گشتین وطن تر و خشک خانه نبود آن من. هم دعا از من روان کردی چو آب هم سباتش بخش و دارش مستجاب هم تو بودی اول آرنده دعا هم تو باش آخر اجابت را رجا تازنم من لاف کان شاه جهان بهر بنده آف کرد از مجرمان درد بودم سر سر من خود بسند کرد شاهم داروی هر درد مند دوزخی بودم پر از شور و شر کرد دست فضل اویم کوسره هر که را سوزید دوزخ در قواد من برویانم دگر بار از جسد. کار کوسر چیست؟ هر که سوخته گردد از وی نابت و اندوخته. قطر قطره او منادی کرم. کان دوزخ سوخت من باز آورم. هست دوزخ همچو سرمای خزان. هست کوسر چون بهار ای گلستان، هست دوزخ همچون مرگ و خاک گور هست کوصر بر مثال نفخ سور ای ز دوزخ سوخته اجسامتان سوی کوسر میکشد اکرامتان چون خلق خلقه کی یربه علی، لطف تو فرمود، ای قیوم هی، لال ان اربه علیهم جود توست، که شود زو جمله ناقصها درست. عفو کن، زین بندگان تن پرست، از دریای عفو اولاتر است، افو خلقان همچو جو و همچو سیل، هم بدان دریای خود تازند خیل. افوها هر شب از این دلپاره ها، چون کبوتر سوی تو آید شها، بازشان وقت سحر پران کنی، تا به شب محبوس این ابدان کنی، زنان بار دگر در وقت شام می پرند از عشق آن ایوان و بام تا که از تن تار وصلت بکسلند پیش تو آیند کس تو مقبلند پرزنان ایمن ز رجع سرنگون در هوا گنا الیه راجعون. بانگ می آید و زان کرم بعد از آن رجعت نماندان هرس و غم بس غریبی ها کشیدیت از جهان قدر من دانسته باشید ای مهان زیر سایه این درختم مست ناز هین بین پاها را دراز پایهای پرعنا از راه دین بر کنار و دست حوران خالدین حوریان گشته مغمز مهربان که از سفر باز آمدند این صوفیان صوفیان صافیان چون نور خور مدت افتاده بر خاک و قذر به اثر پاک از قذر باز آمدند همچون نور خور سوی قرس بلند این گروه مجرمان هم ای مجید جمله سرهاشان به دیواری رسید بر خطا و جرم خود واقف شدند گرچه مات کعبتین شه بودند رو کردند اکنون اه ای که لطفت مجرمان را ره کنان راه ده آلودگان را العجل در فرات اف و عین مرتسل تا که غسلارند زان جرم دراز در صف پاکان روند اندر نماز ان درون صفحا ز اندازه برون، غرقگان نور نهن و صافون. چون سخن در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست و هم کاغذ درید. بهر را پیمود هیچ ازکر شیر را برداشت هرگز بر گر هجاب استت، برون را زهت جاب، تا ببینی پادشاهی عجاب. گرچه بشکستند جامت قوم مست، آن که مست از تو بود، هست. مستی ایشان به اقبال و به مال، نه زباده توست، ای شیرین فعال، ای شهنشه مست تخصیص تو اند، عف کن از مست خود، ای عف مند، لذت تخصیص تو، وقت خطاب، آن کند که ناید از سطخم شراب، چونکه که مستم کرده ای حدم حد مزن شرع مستان را نبیند حد زدن چون شوم حشیار آنگاه هم بزن که نخواهم گشت خود هوشیار من هر که از جام تو خورد ای ظلمنن تا ابد رست از هوش، از حد زدن، خالدین فی فناه سکره منتفانی فی هواکم لم یقم، فضل تو گوید دل ما را که راو، ای شده در دوغ عشق ما گراو، چون مگست در دوغ ما افتاده ای. تو نیمست ای مگست. تو باده ای. کرکسان مست از تو گردند ای مگست. چون که بر بهر اصل رانی فرست. کوها چون زرها سرمست تو. نقطه و پرگار و خط در دست تو، فتنه لرزند از او لرزان توست، هر گران قیمت گوهر ارزان توست، گر خدا دادی مرا پانصد دهان، گفتم شرح تو ای جان و جهان، یک دهان دارم من آن هم منکسر در خجالت از تو ای دانایسر سر خود نباشم از آدم کز دهانش آمده هستند این امم صد هزار آثار غیبی منتظر که از آدم بیرون جهد با لطف و بر استقاضای تو میگردد سرم ای بمردم من با پیش آن کرم رغبت ما استقاضای تو است جذبه حق است هر جا رح است. خاک بی باده ببالا با بر برجهد کشتی بی پا در ره نه پیش آب زندگانی کس نمارده. پیش آبت آب حیوان است دورد آب حیوان قبله جاندوستان زاب باشد سبز و خندان بوستان، مرگ آشامان ز عشقش زندند، دل ز جان و آب جان برکندند، آب عشق تو چو ما را دست داد، آب حیوان شد پیش ما کساد، ذاب حیوان هست هر جان را نوی لیک آب آب حیوان تویی هر دم مرگ و حشر دادیم تا بدیدم دست برده آن کرم همچو خفتن گشت این مردن مرا زی اعتماد بعث کردن ای خدا هفت دریا هر دمر گردت سراب گوشگیری آوریش ای آب آب عقل لرزان از عجل وان عشق شوخ سنگ کی ترسد زباران چون کلوخ از صحاف مصنوی این پنجم است، در بروج چرخ جان چون انجم است. ره نیابد از ستاره هر حواز، جز که کشتیبان استاره شناس. جز نظاره نیست قسم دیگران، از سعودش غافلند و از قرآن آشنایی گیر شبه تا بروز با چنین استاره های دیو سوز هر یکی در دفع دیو بدگمان هست نفتانداز قلعه آسمان اختران با دیو همچون اقرب است مشتری را او ولیل اقرب است. قوس اگر از تیر دوزد دیو را. دلو پر آب است. زرعو میورا. را. حوت اگرچه کشتی غی بشکند. دوست را چون سور کشته می کند. شمس اگر شب را بدر رد چون اسد لال را زو خلعت اطلس رسد. هر وجودی که از ادم بنمود سر بر یکی زهر است و بر دیگر شکر. دوست شو و از خوی ناخوش شو بری. تاز خمره زهر هم شکر خوری. زن نشد فاروق را زهر گزند که بود آن تریاق فاروقیش گازند. پایان دفتر پنجام برنامههای مصنویه معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردند.